یک آرام نادر ابراهیمی یا حق دیگر جوان نیستم میان سال هم نیستم به همین خاطر است که همیشه میاندیشم این آخرین اثری است که به او پیشکش می و به فکرم می میرسد که بنویسم برای آخرین بار به او اما حس میکنم که در این جمله نقصی هست و استرابی یادم میآید اولین کتابم را در نیمه راه جوانی به بهترین دوست روزگار کودکی تا جوانیم تقدیم کردم به برادرم رحیم قاضی مقدم که با دوستیم بیش از همه کس او را عذاب دادم حال در آستانه پیری میخواهم جمله شبیه به آن بگویم. به همسرم فرزانه که با مهر بیدم به او تنها کسی بودم که پیوسته از دادم. و افسوس که نمیتوان بازگشت و از نو ساخت. اما دستکم به آنها که در آغاز راهند میتوان یادگاری کوچکی داد شاید به کارشان بیاید. یک عاشقانه آرام، و اگر خدا بخواهد و زنده بمانم یک آشیقانی بسیار آرام یادگاری است از من و او به همه آنها که در آغاز راهند. نادر ابراهیمی، آذر ماه هفده دوزه. به دیگری ضرورت نیست. حادثه است عشق به وطن ضرورت است نه حادثه عشق به خدا ترکیبیست از ضرورت و حادثه